در بحث عبواب، در بحث مجرد و المزید بودیم که در سه درسش توضیح داده بود. ربائی ها، مجرد ها، بعد سلاسیه مزید و در این درس هم ربائی مزید رو میخونیم. ولی قبل از این که ربائی مزید رو شروع کنیم، در بحث سلاسیه مزید گفتیم که یا یک حرف اضافی دارن، یا دوتا حرف، یا سه حرف اضافی. در اجلوذه ما سه تا حرف اضافی داشتیم یکی همزه بود یکی هر دوتا واف دوتا واف هر دو تاشون اضافی بودند که البته گفتیم یک واف زاید و واف تضعیف که دوتا واف با هم هستن پس حس برویم روی بحث خودمون مزید رباعی ربايه مزید الامثله رو در سه قسمت آورده است الیتی دارد که از قواعد فهمیده می شود تبع فر الورق تدحور سعر القطن در این امثله گروه اول فقط تا اضافی است تبعثر مجردش است تبعثر مزيدش است تا اضافی است دهوره تدهوره امسل گروه دوغم احران جمع تلامیذو فی فناء المدرسه جمع شدند شاگردان در محیط مدرسه در احران جمع همزه و نون اضافیان افعان افران قعه همچنین افران قعه المزدحمون یعنی متفرق شدن اونها که جمع بودند. امسل گروه سوغم اش معلل عمالو في طلب الرزق شطافتن کاریران در طلب روزی اش معلله حمزه و تزعیف اضافیان اقشعر الحارسو من البرد لرزید نگهبان از سردی در اقشعر هم حمزه و را حمزه و تزعیف اضافیاند القائده مزید رباعی نوان رباعی مزید بردونو هست الف مزیدون بحرفه اونی که فقط یک حرف اضافه داره اون بابی که فقط یک حرف اضافه داره و اون حرف اضافه چاست؟ هو تاء فی اوله تا در اولش مونن ترعفره تدهوره که تا اضافی هست با مزیدون به حرفه که دو حرف اضافه دارد پس اضافه که یک حرف اضافی دارن که فقط تا بود در عبتداش و اون که دو حرف اضافی دارن اون دو تا حرف اضافی چی چی و چی توند باشن خب الهمزه تو النون یا همزه و نون هستند مانند احران جمعه و افران قعه که بر وزن افعل لا لا هستند همزه و نون اضافی هستند هم در احران جمع هم در افران قعه دو تا مثال آورده برای این اول همزه و تضعیف یا همزه و تضعیف حرف اضافه هستند مانند اشمعل و اقشعره که در اشمعاله و اقشعره همزه و تضعیف حرف اضافه می باشند. پس تا اینجا کار مجرد و مزید رو خوندیم سلاسی مجرد شیش باب داشت ربایی مجرد یک باب فعلل ماضیش مزارش مزیدها برای سلاسی مزید دوازده باب آورده بود ده از این دوازده باب سه باب فقط یک حرف اضافی داشتن پنج باب دو حرف اضافی و چهار باب سه حرف اضافی و درس بعدی ربایی مزید که تفعلله یک حرف اضافی داشت احرنجمو افرنقعه و هرچه برین باب باشد دو حرف اضافی همزونون اشمعله و اقشعره و امثال اینها که دو تا حرف اضافی داشتند. این بود از بحث عبوات